این داستان سرگزشتگفتانگیز سه سرباز روزی روزگاری در یک لشکر نظامی سه سرباز خدمت میکردند یکی اهل روم بود دیگری اهل فلورانس و سومی یعنی جوونترین اونا اهل ناپل بود اون سه نفر برای هم دوستا و همکارای خوبی بودند اولی و دومی دو بگو، ولی سومی سو برعکس آدمی راستگو بود که به حرفهای اساس اونا اهمیت نمیداد دوران خدمت سربازی سخت و خسته کننده بود و غذای سربازخونه خیلی بدمزه و نامناسب به این دلیل هر سه نفر از سربازی فرار کردند اونا رفتن و رفتن تا موقع شب به جنگلی انبوه رسیدند سرباز رومی در زیر درخت تنومندی با شاخ و برگ زیاد پوله پشتی خودش رو زمین گذاشت و گفت امشب همینجا اتراق میکنیم و طبق راه و رسم سربازی دو نفر میخواوند و نفر سومی نگهبانی میده اولین نگهبانی هم مال خودمه به این ترتیب بعد از شام دو تا از اونا پالتوها رو به خودشون پیچیدن و به خواب رفتند و سومی شمشیر به دست به نگهبانی وایستاد. اون شب شب بسیار آرومی بود. تنها گاهی وزش باد شاخهای درختار رو تکوم میداد و صدای پرنده ها به گوش می رسید. سرباز رومی از بیخوابی کلافه شده بود و تلاش می کرد بیدار بمونه. آخرای کشیک سر و صدای زیادی از داخل جنگل به گوش میخورد که شبیه صدای رژه سربازان بود ناگهان قولی وحشتناک از لابلای شاخ و برگای جنگل بیرون پرید و به سرباز حمله کرد قول به سرباز گفت اینجا دنبال چی هستی ای آدم جسور و بیفکر سرباز رومی شجاعانه گفت به تو مربوط نیست قول با عصبانیت مشت خودش رو که مثل آهن و سنگ محکم بود، جمع کرد و به سوی سرباز نشونه رفت. سرباز به سرعت خودش رو عقب کشید، شمشیرش رو در آورد و با ضربه‌ای محکم سر قول رو از بدنش جدا کرد و به گودالی اندا بعد شمشیرش رو تمیز کرد و داخل غلاف گذاشت و رفت سراغ دوستاش تا نفر بعدی نگهبانی رو به عهده بگیره ولی اون این داستان حیرت انگیز رو براشون نگفت تا مبادا از ترس و وحشت فرار کنن حالا نوبت نگهبانی سرباز فلورانسی بود اون از خواب بیدار شد خمیازه بلندی کشید و از سرباز پرسید کشیک چطور گذشت آیا اتفاقی افتاد رفیق سرباز رومی گفت مگه قرار بود اتفاقی بیفته مطمئن باش آب از آب تکون نخورد فلورانسی شمشیر به دست گرفت و به کشیک ایستاد اون شب آروم و ساکت بود تنها پرنده ای جیک جیک میکرد و شاخه درختی به خشخش افتاده بود سرباز با خودش کلنجار میرفت تا خوابش نبرد نگهبانی اون داشت تموم میشد که ناگهان صدایی شبیه صدای پای دو لشکر به گوشش خورد و قولی وحشتناک و دو سر به طرفش حمله کرد قول فریاد زنان از سرباز می پرسید که به جنگل برای چی اومدی؟ سرباز آروم و خونسرد گفت به تو مربوط نیست. قول با شنیدن این پاسخ جسورانه مشتهای آهنین خودش رو بلند کرد تا بر سر سرباز بکوبه. ولی اون به سرعت جا خالی داد. شمشیرش رو به حرکت درآورد و هر دو سر قول رو از تنش جدا کرد. اون وقت، سرهای جدا شده این قول رو داخل گودالی انداخت. شمشیرش رو غلاف کرد و به دنبال نفر بعدی رفت تا برای نگهبانی بیدارش کنه. وی بی اون که از آنچه اتفاق افتاده بود حرفی بزنه. ناپلی کوچک بیدار شد و پرسید: "کشیک چطور بود رفیق؟ آیا چیزی دیدی؟" فلورانسی پالتو رو به دور خودش پیچید و گفت مگه باید چیزی میدیدم؟ هیچ خبری نبود سرباز کوچیک ناپلی شمشیر به دست به نگهبانی ایستاد اون شب شب آرومی بود حتی شاخه درختی تکون نمیخورد و نفس از جنبنده‌ای بر نمیخواست. سرباز به سختی بیدار مونده بود ناگهان صدایی از داخل جنگل خواب رو از چشمش رو بود. توی چشم به هم زدن قول سه سری از جنگل بیرون پرید و با دیدن سرباز فریاد زد. اینجا چه کار داری ای آدم جسور؟ سرباز ناپلی به آرومی گفت به تو مربوط نیست. این پاسخ قول سه را عصبانی کرد. سرباز با زرنگی از زیر مشتش جون سالم به در برد و شمشیرش رو چرخوند و هر سه سر قول رو از تنش جدا کرد و توی گودالی انداخت. کم کم زمان نگهبانی سرباز ناپلی به آخر می رسید که کلبهی در بین درختان توجهش رو جلب کرد. توی اون کلبه ست تا پیرزن جادوگر دور آتیش روشنی حلقه زده بودن و با هم صحبت میکردند. سرباز گوشش رو به سوراخ کلید چسبند و به شنیدن حرفای اونانشه است پیرزن اول گفت ظاهرا متوجه نیستید که نصف شب شده و هنوز شاهرامون بر نگشتن. پیرزن دوم گفت نکنه اتفاقی براشون افتاده پیرزن سوم گفت، بهتر بریم و ببینیم چه اتفاقی افتاده. پیرزن اول گفت، موافقم، بریم، من فانوسی با خودم میارم که با اون میشه به راحتی تا صد کیلومتر رو دید. پیرزن دوم گفت، منم شمشیری با خودم میارم که با یه ضربه اون میتونم قوشونی رو تارمار کنم. پیر زن سوم گفت منم تفنگ میارم با خودم تا بتونیم با اون گرگای وحشی و درنده در رو بکشیم سرباز ناپلی خودش رو پشت در مخفی کرد و ساکت نشست با خارج شدن اولین زن شمشیرش رو به حرکت درآورد آورد و بی صدا و آروم سر اون جادوگر پیر رو از تنش جدا کرد سر دومی و سومی رو هم به این ترتیب روی زمین انداخت سپس فانوس شمشیر و تفنگ اونا رو برداشت و به محلی که دوستاش خوابیده بودن برگشت فانوس رو بالا گرفت تا امتحان کنه که واقعا میشه با اون تا دور رو دید یا جادوگر رو علکی میگفتن ولی حق با اون بود قصری رو در فاصله ای بسیار دور دید که ارتشی مجهز پیرامون اون رو گرفته بودن و توی عیبون اون گرگ ای رو به زنجیر کشیده بودن که از چشمش آتیش میبارید و نعره میزد. شمشیر جادویی رو به دور خودش چرخوند و فانوس رو بالا گرفت. سربازا به خاک افتادند و هیچ کدومشون زنده نبودن. سرباز ناپلی تفنگ خودش رو امتحان کرد. گرگ رو هدف گرفت و اون حیوان درنده در رو هم کشت. بعد فانوس به دست، شمشیر و تفنگ بر دوش به سوی قصر رفت. در زد ولی هر چقدر صدا زد جوابی نشنید. ناچار خودش در قصر رو باز کرد. گویی نیروی جادویی به کمکش اومد. وارد قصر شد. از این سالن به اون سالن میرفت ولی هیچ کس نبود. فقط توی آخرین و زیباترین سالن دختر زیبایی رو دید که بر تختی مجلل خوابیده. سرباز صرفه کرد و نوک پایی به اون زد. دختر از خواب بیدار شد و یکی از دمپایی های از پاشت در اومد و به زمین افتاد. سرباز ناپلی اون رو برداشت. برای دختر دعا خوند و آهسته و آروم قصر رو ترک کرد. با خروج اون از قصر دختر زیبا بیدار شد و چشماش باز شد. تو همین لحظه قصر شلوغ شد و ندیمه ها دوروبر اون رو گرفتن و فریاد زدند بلند شید تلسم شکسته شد. شاهزاده خانم در عالم بیداری دستور داد کسی که تلسم رو شکسته رو نزدش بیارن. ولی ندیمه ها از این در و اون در زدن و دنبال سرباز دویدن و نتیجه ای نگرفتن تنها چیزی که دیدند ادده سرباز بیجون و گرگی مرده بود شاهزاد خانوم از ندیمه ها خواست نزد پدرش برن و به اون اطلاع بدن که دلاوری ناشناس سپاهی که اون رو اسیر کرده بود رو تارمار کرده و گورگی که اون رو اسیر کرده بود رو تکه تکه کرده و با دعای تلسم رو شکسته سپس متوجه شد که یکی از دمپایاش هم گم شده و اون دلاور ناشناس اون رو با خودش برده ندیمه ها به حضور پادشاه رفتن. اون خوشحال از این که دخترش از شر تلسم نجات پیدا کرده فرمانی صادر کرد که به موجب اون کسی که خودش رو با دمپایی تلایی معرفی کنه میتونه به همسری شاهزاده خانم در بیاد و نیمی از کشور رو هم تصاحب کنه. اون جنون که پیش بینی میشد، آدمای زیادی خودشون رو دارنده اون دمپایی طلایی جا زدند ولی توی آزمایش مردود شدند، چون دمپایی اصلی داخل کوله سرباز ناپلی بود. سرباز ناپلی نزد دوستاش رفت. خورشید بالا اومده بود، ولی اونا هنوز تو خواب ناز بودند. سرباز اونا رو بیدار کرد. ست تا سرباز بعد از خوردن صبحونه به را افتادند ولی سرباز ناپلی از اتفاقایی که براش افتاده بود حرفی نزد در میون آدمایی که خودشون رو به عنوان دارنده دمپایی طلایی معرفی می کردند نامی از اون دلاور حقیقی نبود شاهزاده خانم فکر بکری به سرش زد و اون رو با پادشاه مطرح کرد و اون باز کردن مهمون ای تو یکی از چهار راههای پر رفت و آمد شهر و پذیرایی از مسافران بدون دریافت پول بود پادشاه پیشنهاد دخترش رو قبول کرد برای جلب مشتری هم مشکلی وجود نداشت چرا که هزینه اتاق خواب و خورد و خوراک دریافت نمیشد بنابراین اگر کسی به اونجا سر میزد علاقه من میشد که برگرده و از اون امکانات استفاده کنه. روزی از روزا سه سرباز مثل گورگای گرسنه به اون مهمونخونه رسیدند. شاهزاده خانم مثل نجیبزادهها ها از اونا پذیرایی کرد و بعد از صرف غذا به اونا گفت که به جای پرداختن پول هر کدوم داستان جالبی براش تعریف کنند سربازی که از روم اومده بود تعریف کرد که چطور با دوستاش از سربازخونه به جنگل رفتن و توی اونجا موقعی نگهبانی با قولی یک سر و وحشتناک درگیر شده. سرباز دومی دو که اهل فلورانس بود داستان نگهبانی خودش رو گفت و اینکه چطور قول دو سر رو کشته و حالا نوبت سرباز ناپلی بود که حرف بزنه. رومی و فلورانسی با نیشخند اون رو مسخره کردن و گفتند اگر اون گول ها رو دیده بود که پا به فرار میذاشت و از ترس سکته میکرد. قافل از اون که سرباز ناپلی گفت این فکر بیهوده رو از مغزتون بیرون کنید. اتفاقا بعد از اینکه شما قول یک سر و دو سر رو کشتین من یه قول عظیم و سه سر رو کشتم. رومی و فلورانسی با تمسخور گفتن دروغ از این بزرگتر نمیشه. خانم محترم حرفش رو باور نکنید. مطمئن باشید که این کوچولو برای اینکه از قافل عقب نمونه این دروغای شاخدار رو سرهم کرده. شاهزاده خانم بدون کمترین توجهی به این حرف و حدیثا از ناپلی خواست به ادامه داستان خودش بپردازه. ادامه جالب و پرهیجان در مورد نابود شدن سه زن جادوگر، غل و غم کردن سپاه سنگرگرفته در چهار گوشه قصر با کمک فانوس جادویی و شمشیر و تفنگ، کشتن گرگ وحشی و دعا برای دختر زیبایی بود که بالاخره با بردن دمپایی اون به پایان رسیده بود. شاهزاده خانم گفت: اون دمپایی رو هنوز داری یا نه؟ سرباز دمپایی را از کله بیرون آورد و به اون نشون داد. شاهزاده خانم دمپایی رو بپا کرد. متوجه شد که دقیقا دمپایی خودشه. شربتی گوارا به سرباز داد و اون رو به خواب عمیقی فرو برد. سرباز ناپلی صبح زود از خواب بیدار شد. مات و مبهود به در و دیوار نگاه می کرد. نمی دونست کجاست. روی تختی تلایی دراز کشیده بود، در کنار اون خدمتگزارهای دست به سینه و آماده به خدمت وایستاده بودن و مرتب میگفتن قربان چی میل دارید؟ قربان چه امری دارید؟ سرباز اعتراض کرد و گفت به من قربان قربان نگید من سرباز ای بیش نیستم و از بله قربانگوهای چابلوس و بیشخصیت متنفرم ولی گوش خدمتگزارا به این حرفها به کار نبود و کار خودشون رو میکردن. سر و صورتش رو شستند صورتش رو اصلاح کردند، مواششونه زدن و دباسای فاخر به اون پوشوندند سرباز خودش رو توی آینه دید. چهرش غریبه بود. به یاد دوستاش افتاد و سراغ اونا رو گرفت. خدمتگزارا دوستانش رو به حضورش آوردند. وقتی دوستاش اون رو تو اون شکوه و جلال دیدن دهنشون از تعجب بازموند. موند. دوستاش گفتن این لباس فاخر و زیبارو از کجا آوردی؟ سرباز ناپلی گفت نمیدونم خودمم خبر ندارم. خیلی دلم میخواد از ته و توی این قضیه سر در بیارم. دوستاش باز تأکید کردن که راستش رو بگو. دیروز چه دروغایی تحویل مهمون خونه دادی که اینطور زندگید عوض شد و به این جاه و جلال رسیدی ناپلی گفت دروغی در کار نیست هرچی گفتم حقیقت بود فراموش نکنید که دروغ نشونه آدمای پس و متزلزله و برعکس صداقت و راستی فاخرترین و شریف ترین لباس آدمه سه تا دوست قدیمی وقت صحبت یه دفعه روشون رو برگردوندند و پشت سرشون شاهزاده و پادشاه رو دیدن. قافل از اینکه تمام بحث و جدلای اونا رو اونا شنیده بودن. پادشاه رشته سخن رو به دست گرفت و گفت دوست شما ناپلی عزیز همه حقیقت رو گفت. اون با عقل و شجاعت و درایت خودش دختر من رو از اسارت تلسم نجات داد به این خاطر نیمی از قلم قلمرو حکمرانی خودم رو به اون میبخشم. از همه مهمتر اینکه به افتخار دامادی من نائل میشه از اونجایی که شما هم تو این امر مهم سهم داشتید از امروز در ردیف نجیب زاده های دربار درمیایم سرباز ناپلی با شاهزاده خانم ازدواج کرد. دوستاش هم تا آخر عمرشون تو سایه دولت اون در آسایش زندگی کردند. کانال تلگرامی هزار افسان، داستان‌های افسانه‌ای صوتی. نشانی کانال تلگرامی T.mi مهران دوستیتی .me </mehrran> نشانی وبلاگ ما m e h r بی ال او جی اف او <موسیقی> کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی